این شعر خوشنگیزد خاطر که هزین باشد یک نکته از این بفتر گفتیم و همین باشد از لعل تو گریادم انگشتری زنهار صد نلت سلیمانم برزیگ مگین باشد باش. نباید بود و از تن حصول دیده شاید که چوابینی خیلی تو داریم هر هرکو نکند فهمیز این کلکخی خیالانگیز، نکشش به بهرا ار خود صورتگر چین باید شد جام هر یک به کسی دادند بر داگره قسمت اوضا چنین باید شد. برکار گلا و گل حکم عزدین این بود شاهد بازاری دن پر به مشین باشد اما نیست که حافظ را رندیده شد از خاطر کن ساخته ی پیشین تا باشد ارز کنم که بازال ارفامین نیست عشق همه هم بیست اوز خودش و رو از بعض زندگی و این حتی فرق میزنه و البته رازی هم از روزگار خودش نبوده در بعضی نسخه در نسخه معنون قذنی است که شعر تر انگیزد خاطر که هزین از این محنی محنی باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد ولی فرق نمیکنه شعر خوش انگیزت یا شعر ته انگیزت یا اگر خاطر آدم ذهن آدم، مغز آدم گرفتار باشه و خستوار باشه و غملک باشه شعر تربانگیز نمیتونه بگیه معلومه از پوزه همون برون ترابط ببری خاطر هزین شعر تر شعر خوش شعر تربانگیز نمیتونه بگیه میگه همین یه نقطه هم کرافی اگر شعر منو میگینید مثلا که بعض اشتوریس که خیلی به نظرتون اتون نمیاد دلیلش این است که من خاطران برناکه مراحته یک نقطه از این بخصر گفتیم و همین باشد این از لعه تو گریابم انگشتری زنها اولا انگوشتری یک جز ات کلمه است یعنی انگشتر نیست آس بکلم نه انگوشتاری بعد چی شد؟ مخالف شدی، تند اتفاقا کلمی درازیم آس سه تا هجای بلند هستشم آن، گوش، تر سه تا سیلو بلند پرستارانم این است که انگوشتاری که میگیم چه چهار تا آن، گوش، چهار تا وجود داشته. می‌تونم مخالف شوم یا انگوشتاری. ولی اصل کلمه انگوشتالی لعنه لب معشوق رو لب و دهان معشوق رو که قدیم صلیقه که بهان با تنگ باشه و خیلی به تنگی بهان معشوق تبکه میکردن کردن بحان تنگ شیری مگر نهر سلیمان است مثلا نمی کنم و این بسیاره یه شاعری که میگه که دیدم به همیزی رفتم از خوش دیدی که به هیچ مرد بودن یعنی هیچ مرده بودن <تصفيق> برحال به انگوشتری و به خاتم لعل و اینا به مغر سلیمن تشدیح به هم معشوق و بعد رست میبودن اگر به کسی کسی که جانش خطر بوده یا ممکن بوده که فرمان قفلی چیزی بدن و حرف میخواسته بزنه که میترسیده بر نصب نتیجه این حرف چونش به خطر گفته اول انگشتری زنهار میخواسته زنهار به معنی امانه امان بادن تنه زنهار زنه بابن. طبعاً زنهار خواستن یعنی امان خواستن زنهار دادن یعنی امان دادن زنهار دار یعنی کسی که امان به کسی داده و اینو حفظ میکنه توانید خار یعنی کسی که امان داده و اد کرده و ضد امانش زنهار خوردن اینا موارود است که میاد و یکی از رست ها این دو است که شاه یک انگوشتاری به نشان عمل به نشان تحمیل به طرف میداده مثلا نهارت میخواب بزنیم بزن این دو بشنیم افتان انگوشتاری زنی هست میگه اگر من علا اینجا لطفت این بیتونیم چقدر زیاده میگه اگر من از لعل تو، از بحام تو، از لعب تو، انگوشتری زنهار بگیرم. اینجا انگوشتری در بین نیست. زنهار دادنم اینه که خودش بگه که تو در اما. اینا اینو میگیره در منزله انگوشتری زنهار. این هر پمر. که اگر این انگوشتری زنهار از لعوتو بگیرم صد مول سلیمان زیر نگین من یعنی بر اینجا باز به با انگوشتری حقیقی تو در اون طرف صغط انگوشتری حقیقی نیست صغط بحن مشروعه از لعوتو گریادم انگوشتری زنهار بعد فرض می اینجا که این انگوشتری داست هست اگر این داشتم صد مول سلیمانم بر زیر نگین باشد زیر نگین داشتنی چیزی؟ زیر من فرم این فرمان برایی داشتنی برای باز برای اینکه که مثل این قبلا گفتم و اگر نگفتم الان میگم که یکی از انگوشتاری های و بوده هست که به صورت مهر ازش استفاده میکنه و این همیشه بحثش بود و فرمان های پادشاه بدون اون مهر قابل اجدا نبوده مثل حکمی که الان وزیر مثلا امضا نکنید اینجا نکنید نکنی که که قاقب بود اینجا اون مهر پابچه هم همینطور ترمان های پابچه به جز یک نقش یک نقش که منشور بهش میگفتن مهر نمید منشور یعنی منتشر شده یعنی اینا فرمانی بوده که صادر می برای اینکه به اطلاع عموی مردم برسه که چاپ که وقت نبوده می آوردن سر چهره، سر بازر، سر فرسول و صدای بلند می خوندن مردم جهن می شدن اینو بهش منشور یعنی اینو همون نشد شده و فرمان پادشاهی مهر نکرده اسمش منشوره همین دیگه باقی فرمان پاچه باید مهار بشید. به وسیله چی مهار بشید؟ وسیله مهاری که یا دست خودشه یا این که یک کسی رو که خیلی خیلی طرف اعتماد و اعتماده این مهار رو به اونی سپردن که منصب به فرانسه شانسلیه به انگلیسی چانسلر که رئیس دانشگاهم بهش میگن ماردار این مال این منصبی که این مال پاکچایی باید باشد بعد چون این ما که به فرمان میخورد این فرمان قابل اجواب بود بنابراین فرمان روایی و سلطنت رو میگفتم زیر نگین داشتم میگه مثلا مال که زیر نگین من یعنی فرمان من که با این انگوشتان بار میکنم در همه این مملکت اجرام این زیر نگین باشتن یعنی فرمان وقایی داشتن میگه من اگر از لعلتا انگوشتری زنها رو بگیرم صد تا ملکی سلیمان زیر نگین منه اگر یایتون میشه در قصه سلیمان نوشتن و من بارها اینجا گفتم که باید حصه های پیغمبرانو حتما بخونیم برای اینکه بدون اطلاع, اطلاع داشتن از جزئیات این قصه چون کلی ها چیز ولی بدون اطلاع داشتن از جزئیات این قصه ها اصلا فهم بعضی مطالع و عددی ممکن است. از جمله در مورد سلیمان نوشتن که او بر جن و انس و جانوران از پرندگان و چرندگان و جانوران دریا و جانوران زمین و همه این مخلوقات خدا فرمبقایی با این با باد و اناسر اربایی در اختیارش بود بعد بسات چول از این می برد به اون برد یه چیز افسانه‌ای و در حقیقت افثانه هایی که به سلیمان نسبت داده شده، بسیار شبیه هست و هایی که در نیتولوژی آریایی و جمشید نصفت داده شده و قصده های جمچید سلیمان از خیلی قدیم از پیش از اسلام با هم قاطی شده و گاهی میگن جمچید مراد سلیمانه گاه میگن سلیمان مراد جمچید این تخت جمچید قرص رو بشی میگن ته سلیمان چلم نب و خود به سیر شدن انگشتاری مربوط به سُلَیمان دیگه که انگوشتاریش گام شده چه و زید دیبی به نام صخر جنی این رو به دست آورد و دستش کرد و خودش به سُلَیمان تمدید و احمد بجای اون فرمانروایی کرد و چه؟, چه باید گفتم قصه‌هاشو بخونید یک کتاب هم <تصفيق> <تصفيق> بهتون گفتم کتاب سادگی بسیار قشنگ و است به نام قصص الانبیا مال ابو اسحاق مرموم حدیب زرمانی شاهر مرافر این کتاب رو اول گنگاه ترجمه کتاب در گروه ثابت چاپ بود الان ناشرش شرکت سامی انتشارات علمی و فرهنگی شرکت دولتی اینجای منیاد فرهنگ و گنگاه ترجمه کتاب اینا دید. این قصص الانبیای عبیل سخانه شابوری قدیم تا این قصص الانبیای است که در پارسی و عربی هر دو نوشته شده بعدم کتاب نسبتاً مختصری هست، خیلی مفصل نیست، بعد میگوید که من این رباوتها و قصصها و دهتنبران رو درست از روی قرآن و از روی ها خیلی معتبر آوردن و اون شاخ و برگاه محصولی که اعتمادی بهش نیست نیست نیست خیلی این کتاب قابل استفاده است. خود نفسش هم بسیار قشنگه و برای شما هم اصلا اگه این افتلاحاتی راجعه این یعنی دو چیز رو باید بدین. یکی قهرانان روایت ملی، قهرانان شاهنامه، که حد دونه, دونه بشناسیم، اگه نشناسیم تمیحافظ گرید میخونید. میگه شعر ترکان سبحانه مدبعیان میشوند شرمی از مظلمه ی خون سیاه و چشمه. سوختن در چاه و صد و زهر آن شم اچه چاه و تورکان فارق است از حال ما کو گفتن منو چهره دانقانی میگه شدی چون چاه ویژن تنگ و تاریک چون ویژن در میان چاه روی من اینا رو نمیتونی که باید قهرمان حماسی ملی رو قهرمان رواهات ملی رو خوب پشت نسید سرگوشت پیغمبران رو اینا رو خب بعد ببین برای سان ابو دیا. آکی هم مثلا میگه گفتم انگشتری سلیمان گم شد و دیوی درخت سفر جنیر عکاش نشه چه کار چه کار؟ حافظ میگه که وزیر سلیمان هم اسمش اصف اصف تو تو آرشیوها موجود شده میگه زبان سه رفتن مورچن پیش سلیمانه که میگن مورچه راه ملخی یار سلیمان حدیه برد و این حرفا حافظ میگه زبان مور زبان مور و آصف وزیر سلیمان دراز گشت و رواست چرا؟ که خاجه خاتمه جم یابه کرد باز نگست و اینکه که جمشید رو گام کرده رو پیدینه قصه یعنی 100 درصد مربوط سلیمان رو به جمشید نسبت میگن بنابراین امیشدگی قصه های مربوط جمشید سلیمان رو میتاز کسوب عبای فارسیست که باید بدون تو تودیش کنش ما جاهای دیگه داریم میگیم میگیم این که هفظ هستش نه خیلی اون که قصه سلیمن هستن که قصه جمشید نیست علاوه از این مقادیری زیادی از مطالب مربو فرابایتای ملی رو فردوستی در شامن نگرده یعنی فردوستی یه گذینه خیلی خیلی دقیقی کرده مثلا نیکی از موادش که خیلی است یکی از پهلاوان های خیلی مهم نهما فمیلی گرشاست بودید. قصه گرشاست، داستان پهلاوانی های گرشاست در دوله فردوسی وجود داشته. پنجه سال بعد از پردوسی همچهریش عصبی توسی او را منظور کرده. به نام گرشاست منو. الان هم هماسه شماره دوی ایران، گرشاست نمید عصبیه و فردوسی. ولی فردوسی مطلقا نیورده که توشانه و این دلیل داره این است که عقلش نمیرسیده یا مثلا به نظرش نرسیده یا پیدا نکارده 35 سال تو این کارها رنج میورده این حتما دیده بگه دلیلش این بود که فردوسی میخواستی در شانهاش یک جون قهرمان تازه اول افل بشتید دو ولی یک چهره چیز که اون جلو باشه، اصلا بر پرامیل فلان باشه جلو جلو، یک چهره بیش کردم و شایی اینی که نیاره یا قصه های مربوطه با همین پهلاوانان دیگه چند جور رواهات است، با یک چند کافیادی است تو دو جا دیگه است بسیاری از قصه های جمچی در عوضا آماریده اصلا نهر که چانونه نمیادی قصه ور، واقعی که بردیر زمین ساخت برای اینکه بلرا چوک فانار منی بارفوت مارد من نکنه فود بنون چنا نکنه کنه اصلا در شانم زکر یادش نیست در ابسطه هست اینا هستش این قبول نسه ولی قرار از اینه که این دو تا با هم چیز میشه و قاطی میشه از لعلتو تو انگشتاوی جان هر ساعت مال که سلیمان هم دین نگین بشه یا نه از این انگشتاوی زنهر تو احمدی خالص ای تو نظر بتوننده داشته باشی مثل اینه که من پاچا و همه ای حالا نستم نباید بود از تحن حسود دیده خاجه ظهرن حسود به حاسد داشته خیلی هم دشته. چند بارم اشاره می کنید حفظ و تو چگونه نکته تواهمت برانگیره حساد چه میبری؟ یه سوس نظم برحافظ به خاطر و لطف صفند خدا داد است و این بازم داره اینجا هم این که برازم اینه که حالا اینجا که شما این شعره میتونید فکر نکنم که رو هوا چیزی بران که اصلابی میگفتش که این ور این. کلمت رو نمونم همینو، نگینو، درینو، نمونم چینو، چنینو، اول می‌نمیسه بعد یک کلمتی پوشتره این میره که این به این بخوره و به این طرزیب چه میسه سه بنابراین موزاته حالا من نمی‌پرزن به زحص درموزنین یعنی تو کار من نیست ولی از طریق به قول معلومه هندسه در مرس موتو هسته از قریر برهان خول من یک کلمه میگم یا قبول درسته این که میفهمم سهره میارم چین و جبین و چنین و بندن برین و همین میذارم این درسته چطور شده که ما سی هزار تا شاعر داریم یکی شده حفظ یکی شده سعزی بابیشون هیچی نشده بگه همه همین بابیشون نداشتن چطور شده فسین یکی شده اونهای دیگه نشده بنابراین این استدار در برای تصور تصبر ندارمایید که این یک هم همجورد گفت نه غزال و حفظ گفتم شعنی مزول داره یعنی همه اینه در موارد معیانی به حادثه اتفاق خوده یه مطلبی پیش آمده بر باره اون غزال وقتی که حرف میزدن که یاد بادام که نه وقت سفر یاد نکرده نکرد به ودایی دل غم نکرد عرض کردم که احتنالا کسی به سفر حج میدفته دوست خاجه بوده و خاجه توقع داشته که خداحافظی بکنه خدا خداحافظی در سفر حج خداحافظی کردن و حلالی خواستن از همسایه خیلی امر مهم نیست یعنی کسی که میخواد بره حجو به جا بیاره چون اون یک سالان کل میشه تو سفر خطرناکی بگینا اول میاده حلالیت میخواسته از هنه. به همه خلابزین که از این یارده ظاهران بابا بخاجه که خیلی هم دوستی داشتن به همونا چیز نکرده و اون گله میتونه واسه انجب هم بخش میزد همه هم خیر و قبول فنبه پیر ندانم به چه آزاب نکرد یا مثلا این که خیلی سریعن وقتی به اجله شاید اگر پیک سبا از تو بیا همیزد زمان که چه علاقه دار از این حرکت چه و چه بعد من نگرم بودن نراحت بودن تو اون غزل هست. این رو هوا که نیست حالا انجان عددی مثلا میگن که خب رفق هفته بعد مثلا این غزل صحبی رو استقبال کنیم بعد میرن هر که یه چیزی میسوزن وان وان میارن خب این یه یه دفعه مثلا پرس کنیم که سایه من یادم این سایه شعر فکر گرگیه که چه, چه شعر فکر رویست یه قضلی صافتی بود که خیلی هم سرسدا کرد، این چط به دل من گوش می کنی فرده هم چه آچه قصه فرم نوش می کنی خیلی قضلی نگاهی هم تو اما جهانز خون دل و فرصت نگاه دار اگرش نوش می کنی اگر خوش بگویم به بهتر از آن دوری که تو برگوش می کنی چه و چه و چه سایت و شمد شعله وقتنده این که باستان که بالا لب فرمون شد خلی ازال بسیار زیباییست به دلیل همین زیباییش مجله روشن پکنه این مسافقه میگه خب آرایونش یک غزالی به این پتیب بسازن با سایه یک علاقی داشته یک حادثی اتفاق که این تد تحصیل این قرار گفتیم بنده ای که مثلا فرع هستم بعد میخوام به همون وضع به همون قاطی چیز بوسطن خب اصلا نمیشه چون که من اون عامل تعصیر پایدار ندارم چون من که من یه قسل اون خوب باشه خیلی ولی این نمیشه اونجا حرفا نمی تمام مطالبش چند نزول داره این که میگه همجور رو روهانی نیست این که میگه که قامناک نبا و ابو با سنه حسول دی شاو تو شب خیلی تو با باشد. کسی بهش حسد برده تحنه زده گفتنه این شعرش نزخرف کمال خوجنگی دوشتی اسمش هم الان میگه نشدیده میگه نشد به طرز غزل هم انان و حافظ اگرچه در سفرندان اول توارج و میگه که قمناک نباید بود از تحنه حسون گویده نسی گفتن اگر رو گفتم، گفتم دوباره میگم نیزه دو تا بریم یه سرش چیزی که رو حواست اون میگن سنام ما که تیزه میگره اون رو میگن سنام. اون طرف نیستا چوبه یا نیه اونجوریده هست که میزه اون دو زمین اون رو بهش میگن تان. این همین فهم فهم یعنی تایی نیزه بعد وقتی که دومدون جنگ پهلاوانات با پهلاوانی که میومد همشانه بود جنگ نمیکرد بگو برو برو هم تو جنگ نمیکنم برو که مفتوش این بود ای تو رو بپوشم به برسه قلبه کنم برو من نایی تو رو انقلابه کنیم هیچی من اصلا با سر همون بذارم با تو جنگیم. و اگر مثلا اتفاق میفتاد بعد اگه میخواست بکشه سنانه نید داره بکار میگو میزاد از البته تو اون چهانبازی و گرامتیزاسون نقل استقایی پهلابانی هم میگو باید با نیزه کرد دور سر چرخون دو میگو پرد حالا اونا رو بگذاریم از کنم که بلی اگر نمیخواسته بکشه ته تعنیزه او رو میزدیم اینجوری میزده از اصلی از تکل اینه که تعنیزه و بعد بعد اینه رو میگم تعنیزه یعنی ما فعی نیزه آدانی زبان یکی برد میرو یعنی زمین میزن آدانی مراحت میزن ولی توشنگه نو این تعنی که میگن و تعنی معنی بردویی اصلا معنی اون تعنی نیزه خب این ولی این غمناک و بود از تعنی هستون بگو چرا شاید که تو وابینی خیرت رو بردو باشد و همچنه اگر گفت اصلا این به نقض اتویده بشه این اشاره از آی از قرآن کریم اصا انتک رو و خیرون بکن و اصا انتک رو و شر رون برای بعضی بویستم که شر علامان خیلی نیا ما تندی می‌برنم، نام بیشتر، نام این که شما چیزی رو خوش نداشته باشید کراحت داشته باشید باید نخوش آگان باشی و اون برای شما خوب باشی و این بس ها چیزهایی که شما دوست داشته باشید و براتون برای بد این اشاره با نه، بعد درست هستم درست هستم مریض هستم چیزایی رو میخواب جوزش بدید خونه هستمشوند بر نعض استفقه مریض های دو عب بزن عب عب و عب زهر خاصله برشوند وقتی لازل میبوند در خیلیانش میگرم میدو عب میره نعض سونم استفقه هستمشوند بله نه نه گربه هم نالو کبه ده کسی سرده استثقاف اولو لازل نباید بود از پهنه هست دی شاید چاید که تو بابینین بو خیلی تو با باشد بعد صحبت هم از بایداره می اگه تو کسی این چه تو بوجه بوجه هم تو جهنم هرکو نکنب این زین کلک خیالنگیز کسی که از این قلم خیالنگیز من چیزی درک نمی کنه کلک اصلا معنی نیه و قلمان یه نوی نیه دیگه شما که بسیار شما دیگه اصلا قلم که ابو عبد القارمن چرا میگه میو باذکی است و بعد درست میتونه انصاف قلم هم با قلم هر این برای درست درش دنیای فلسفه میتونه بالانفام بده به هر حال چون با معنی قلم به کار رفت هرقوم نکند فهم این چون که شو آلمانیش نقشش به حرام بنی ناباشی هارومش بشه یا نقش او نقشت از خیلی دونی نقش هم هر نقش یعنی و خیسمت و خیسمت و اونم هست بر هر حال یعنی هرچی داره هر حرامش باشه هر خود صورتگر چین باشد اگر اگرچه صورتگر چین اه... نقاشان چینی انا در اسلام چون نقاشی هرون بوده طبعا نقاشی پیشرفت نوشد دوبه هم این که نقاش میاتور بوده و میاتور درسته که با طبیعت خارج شباحتی نبوده ولی خیلی زیباست هست دیگه اپراش درختاش قشنگتاره پیوناتش قشنگتاره زنه و مرداش میاتور میاتوره زیباست. زیبا و همین دارید نقاشی چین خیلی خیلی معروف بوده و نقش چین بر عرب فارسی خیلی زیاد عمدید یک قصه اندر مولانا بسیار قصه فوق العاده زیبایی مرا کردن نقاشان چینی و رونی یه از که نقاش چینی نوعه از که نقاشان رونی هر کدوم تعبی کردن که ما نقاش بهتر یاد و باقید رو بردم به شاه شما که خوب شما این رو شما شما اینجور کنید نتقاشی کنید این و مثلا دو مهنده نتقاشا در اتاها رستن و شدن و بساید نقاشوی رو میم چون میکرم این پهلوات اونجا اونم دارو اتاقشون بستم روزی که کنم شد و دراستی که باز کنم همه با این بارو کردن این بارو باز من این بارو باز کرد نقاشوی این خیلی عجب، خیلی زیبا، روز این رومی ها هیچ کار نکردند. بودن در این دومه تنها کاری که کرده بودن بیخلی کردن فوقل بیوارات به صور که تا این پرداره برداشتن تمام این طرف اینطرف اینطرف مانه گذر بهتر است کردش بعد مولانا از این چیز ارفانی میگه بجه ارفانی میگه رو میگه تو دلت رو صف بکن دلت رو سیغلی بکن تا نقش زیبای خودش دارش کسی حالا کنید هر حال این نقش چینی، نقش چین،, چین، خیلی معروفه، دو چیزی هم اون پانون کنده بود که حالا دیگه کسی بودش نداره پانه البته بالت هم کنده صورتگیر نرخاش که به معنی نداره صورتگیر همون نرخاشی هم به صحیحش هست صورتگیر دیبا و چین دیبا یعنی پارچه عبدالشمی کلوب که الان هم بوم نرخاشه هست صورتگیر دیبا و صورت یارم ببین. یا صورتی برکش چنین یا ترب تو بیت خونده، این بیتشمال سعدیه که پلکن خونده یه بیت بیگرم داره آخو را مهر مهره برزیدم، بسیار خوبان دیدم اما تو چیزه دیگرم این مولا انیساسو دهلدیه تو تو بیت مولا یه فرم دیگرم برهر صحبت نقاشو و نقاشم چین و امثال اینا خیلی زیاده در عدد میگه اگر کسی که از این کلت خیال امگیز من نکنه نه چش حرام باشه اگر چشم دور از بعدا که هر قسمت خون دل هر کسی دادن دا خون دل به کسی قسم دادن دا قسم دا دا قسمت اوزاد. بس کنس این تمامه بهتر نظره بهم برکار گل این بود شاهد باطاری من پر بنشین باشد و از گل اضافه یعنی یعنی اولان بچه سیدات اینا اضافه ای شده یعنی خوش گروه شده در زین بارها بارها اشنا گفتم که گل در شعر سعدی شعر حافظ و گل صور هر جا گل میاد اسمش بینه چیزایی که ما حالا امدید گل و گل رو جای فلاور انگلیسی بداشتیم یعنی گل ها این به این معنی نبوده این گل ها اسم خود کنی داشتن شه بوده و سوسن بوده و تیلی بوده و بوده و استانبول بوده, و بوده و هم رنگ نسری و نسرین بعد سطح ها رنگ طبانت هم که استانبول او قاوی دارد باز ما ناظر نگرکه لاله و از این رفایی در کتاب زاده بشد جامعه ای زکر نمازد به نفشه طره نفتول خود گره میزد سباه قاعدی زل فتور آزمانده هر کدوم نه ازم گره گل یعنی روز. این کلمه رو الان نه به معنی پرلی گل گره ولی در گلاب این مهمون صورت اصلیش باقی نگه وقتی این گلاب یعنی عرق گل صور اگر از یاس یا از بنابشه یا از نمیدونم سانبول عرقی بکشان، کشن او نمیدیم گلاب با نوزیم با این به همین صورت گله تا دیم دلتان این گلاب و فرس امروز هم واقعی میدیم گلاب رو میتونش تو شیشه گلاب میارنش خوازار خوش گل این که حکم اعظامی حکم اتطاعی در گلاب گل این بود که گل شاهد بازاری باشه شاید به عنی معشوق زن زیبا به عنی خیلی هم حافظ بکار بازه شایدان در بر این کنند زایدان را رخمه بر این منطق. خیلی داره برکار گلاب و گل دول. اول گلاب میاره بعد گل میاره. میره حکم ازالی این بود کین یعنی گل شاهد بازاری وان یعنی گلاب پرد نشین باشه این پشتشی چه از این روش میگن لفتونش مشوش یه لفتونش مرکب داشتی گفتیم لطف نشت مرتبان با که دو لطف آورند و دو معنی لطف اول به معنی اول لطف سعنی و معنی سعنی دیشتر اونی هست که با اون اطولیم و اطولیم با دوبانی و رو و سرپانی گفتیم که تو همین دیوان چاپ و نرهان غزبینی یک دادای توی هست که اصلا مال معایزی قناده توی بال خانون معایزی نیستانه با نال محزیز امیر و شعران دیوان حافظ. من خیال میکنم این بوده که خارجی از این دوبایت خوش شونده خودش مرمون فرمیده وقتی که بوده بعد که دیوان چاپ بودن باید که شعر... شعر خط تاخذ بوده که حفظیش من چاپ کنن نوشنن به عنوان برناسقه ای که مرمون فرمده. احساس کارش این چیز هست اونجا هشتا میگه سال و مالو، حالو، اصلو، نسلو، تختو و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت هشتی باشد از پر خانگاری، پر مراد و بربابر سال خورم، پال نیکوش، مال باخوش، حال خوش اصل باقی، تخت حالی و خورم هشتی پس اون هست و این لفتانش نورد ولی نه، اولی رو با آخری میارن وسطی رو با این که وسطی میارن لبانهش ترتیب بدرین میشونه لبانهش مشبهش مثل اینجا فرمصرا اول, اول اول گلاب اومده، بعد گلاب اومده فرمصرا دوزان اول گل اومده، بعد گلاب اومده برقار گلاب و گل حکم عذبی این بود چین، یعنی بود. ساهد بازاری و هم در بنشیم نیست که احفظ رندی بشد از چنین نیست که احفظ رندی از خاطر احفظ برشد. رند، فارد روز دار زندگی پیش از خاجه مفهوم بد بشد. یعنی عدم بیصرفه، عدم علاقه، عرازل اوباشه، هر رو بیصرف های تو بی خیابون رو بهشون بگوطن رند و بیحفی تو کتابش در داستان بردار سازن حسنک وزیر میگه مشتی رند را سیم دادن تا بیان سنگ بزنن به حسنک بارش کلی کشتی بله فبلاس بله بله. حفظ حفظ اصلا محروم این لغت رو تحییر و نمونه رند خودش میگه عاشق و رند و مذاربازم خودش میگویم باش تا بداونی که به چندین هنو آراد یک جمعه نمیگه عاشق و رندم و میخاره و آواز بلند نیم همه نمصد از آن شوخ طبیبش کن هم نیست که عفظ رنگی بشت از خاطر. این سابقه پیچین یعنی از روز عزل خداقم این روز پس, پس, پس این روز در نظر حفظ فعب از دوره حفظ عدمی که ذهن جستگوگر داره تو همه سواخاست در کرده همه کمالات روزگار خودشو دنسته برزن برزان رو خوب بر برموقش از خود داره اینا از این صفات رو پرورد این ما ای. ای. از نبرد رندان شاهی نه شاید این زیبای در ذهن گفتن این ارز شاید چیز شده الان ستایش زیبایی ادامی لعقل در روزگاره خود این که مردی از داری مردی دیگه زشت نبوده به شاید که نایین باشه خود شاید خوزا گفتن مرد خیلی زیبایی بوده قبل بلان نیدشته ارزتن که چهره زیبایی دشته و نرخیز بوده دوست دشته زیبایی شو ستاهش کن به حفظ این غزلی نمونه روح اقو من داره چشم من اصطنه ای توست کن اما حفظ خانه خانه توسته به شاشو جاید اینو من خبزه میگه اینو اگه آزان که طرف فکر کنید به یه معشوزنی به اختبالی بعد که میدونه و باید او میخونه میبینه وصفایی که کرده خوری راحت به مرگ هم میخوره و دیگه دو بخشون شاهد و چیکی خواهد آجافتی مزار سوی گشته برلوز هم نیکمیت باید شاهدونم شاهد بازواری؟ یعنی جلبه داره خواهد نه، نه، نه، جلبه موسیقی برگیم گلوپ خب آسکنم چیر ببانی ببانی جان شو نه این حفظ زیر بار جمعگوان دیوانش نرد نه باستن همه خسل بشه علاق چند این بود که شعراش یه قدی خطرناک بود و احتمال این بود که اگر که خب به صورت جل شده در و این دیوان خاژا حفظه بعد تکتیرش کنن و بگن که اینو تو گفتی و تو کافری و نمیدونم اینه نه. این رو که تا اخران میگه اون کسی به جمع کرد دیوان احفظه و که ما هرچه گفتیم که این دیوان و جمع کنم زیر بار نرد و میگه که مردم روزگاه نامردن و خب <تصفح> <تصفح> میگم این است که رفت و شعراش جمع ولی خب شعران نوشته به خط خودش بود بعد شخصی اونه محمد گلنده هم که همدرس خواج حافظ بوده این شراف جمع کرد به صورت دیوان داره برد و این خیلی مدت کمی بعد از مرگ خواجه یعنی کمتر از بیس سال بعد از مرگ خواجه اینا رو جمع کردن به صورت دیوان داره بردن و الان نسخهاش هست همون نسخه ای که چپ مرمان غزگینی از رشتورات گرفته فقط سی و پنگ سال بعد از مرگ حافظ نرشته شد این هست که مصقه‌های خیلی قدیمی هست که خب تبینیست از روی اون از خب تا حافظ بود بعد که که خاقصداره این دو اولا که اون وقت که مثل حالا قدر این مسائلان ها نمی‌دونستن که سنکر این کتاب کنه شد و عزیزی نغتر می‌نوشتن که آنها رو می‌کنم که اغلب کتاب‌های قدیمی که نمونده که اینه همهش میدون تاختتاز بوده و این بیا و این برو بزن بخش و تهم این 2400 سال ما چار پنجه پنج سال فقط اصایش و حرامش تشتیم باقی شهنهش بیا و برو غارت و تاراچ محطمی مالی از روی از حافظ 700 مقضی دو از 811 میبان بود هشتباه شون این چون تنگیزی میدید جایی؟ کامل من 811 چیزاش هم اگر در جلد درخوم این حافظ که حالا جلد اول که می نداریم یا حافظ چاپ سایه، نسخه قدیمی رو عکسش رو یه خب، حالا، بنده بفنزن به یک دیگه که هر جفت هفت اول اتداری در سال عزیز ساکه مثلا هشت ده اول که بود این هشت نوشته بودم به بطه ها میگفتن که چیه؟ و اصلا مطلب چیه داره چیگرد میخوره و اصلا خیزه هست بعد من میزنگم که چیه حالا چون اون فرصت نیست این که میگم و اول اولا این هشته را کنید و بعد هم میگم چیه اقل قومی که دنیا <تصفح> <تصفح> از دنیا الاف با ال یکی از های تو قلعاده بزرگی در چیز فرحانگی بشه یعنی yani قبول خواب لازم مردم معتقدشونو به امیدی یعنی از تو و از و از و امیدی از دنیا که ابلهم فراده داشت من به کسانی که هم عصر و فاستن چیز بود. تو علان این اختراعات را حالا نه که نبوده که این چیز. دو دلیل که نزدیکم باشن. انقدر که یوسف برسید تا این. یعنی زمان و مکان خیلی مهمه. و تو فقط زبان بود، و فقط مدید مطلب آن از مخصوی این، برو تو مخصوی خب این تو بزرگ دیگه یه قبیله بود مثلا اینا تجربه داشتن، فرهنگ داشتن، اکتایی داشتن، یه حرفایی داشتن هفته یه تجربه هایی، از صفتن ایمون، صفتن عبدار، نموند، ساره یه بیماری همگانی میومد، یه دفعه همینو اینو یه بابا میموند همه میموند تمام علم و دانش و تحجیبی هم فیدیکرسن همه میروند یه یه دهو تمام هر چه مذرین ها فعالیتی میمارد. بعد از مدت ها اصلا هزار سال سده سال, سال بشر فقط هر پیزد. چیز، چیزی آره اول بار بعد سد هزار سال که اقلام، ما اقلا به این سرعت بیشترد نمی که الان هر ده سالی اصلا دنیا عوض می شود وقتی من درس می خواندم پوتوکوبی نبیش. خودپرم نبیش. جوزبه می گوم اصداد بدلا می نوشتیم بعدم میکنم هیچ را همی گیرد می کنم که بعد از مدت ها به عقلش این بسید که خب میشه این یک کاری کرد مثلا میخوام بگیم خونه میتونیم عجز یک خونه رو بکنیم میخوام بگیم دوستند خب میتونیم عجز یک دوستند بکنیم و شروع کردم این بردی این این قدم منگرد شد که این که تو این ما توی و از این مغز باز میرسید اونی از بیرون اگه دوزنید. یعنی سوبجکتیف شد اوبجکتیف. بیرون زهن. این زهنی بود این شد اینی. خب بازه ایچی ذهن مثلا محبت کشکار، اش کشکار دو از قبیل اینکه مثلا یه بنی که بچه رو با خوشش بشارده محبت نسته میشوند یا مثلا لارفتن و, و, و که اکس که اینو با نقش پاو نده این کلکه هایی سوزه دفتر رو, یوش یوش رو که خب این خونه رو با حالا وقتونهای بگیم که این خونه است یا آراد پنجره هاش هم لازه نیست همه رو بزنی و شیشن به زیونه میتواه بکنی یه سه چهار و پنج یعنی خلاسته میشد یه چیزی که نشون بده کم تم کم تم نا تصدیرها خلاسته شد و تحمل شد و شد برای هر چیزی یه علامت بگیشد برای خونه یه علمت، برای زیست یه علمت،, علمت، این ایدوگرام. ایدوگرام یعنی, یعنی تو خط میخی بابلی و آشوری خط هیروگلیف مکلی خطی که جب به این خط چین را خونه الان این خط ایدیوگرام، یعنی برای هر چیزی الان ها داشتن و من یک کتاب یعنی ازای تمدن بابل آشور میخوندم نرشته بود که بچه که میوید مکتب چارده سال باید بخوره و رنج های تا قطعه تا قطعه بکیشه تا قطعه بر اینکه نگشتن و تا به گلی که کارشونم پر، بود لوهه گل بود گل رو که صفت می بعد با قلعه این حلانات های حالا این خوابیدهش دوست مثلا، بود، توسیت بس و این بچه نزده این سال باید مثلا ده هزار, هزار علامت رو تو مغزش میگرده توتون فقط یه نیست ده هزار از باب لاشون دست تمامش پره غلطه میشه یعنی بعد تا زید سرشار از که مشکلی مدت ها بشر خطش این برد بردی دید یه ف... اه... قوم هجارتیشهی که از تیرگی که طیب چند ان راج morally terminar چند من درست علم این کار ندارم یعنی دوره قبل از رو من نمیدونم کارم نیست فقط میدونم که این صرف من. الان هم سوریه که سور و سور به باقه مجهور این های مجهور معروف من دوره حالا رو نمیدونم. این هر شباب و هر رو قدیم و الان الانم در پاکستان مثلا در تاجیکستان دو جور تلفزه یکی به صورت زنوه کشیده مثلا چیزی که نهر که سیاد باشه شور بابا بینیستن ولی بابا سیاد زنوه کش بر یا روزم بجنگ اینو بشنگان باغو معدلونی یکی هم بسوارده که من همه رو خلافوز میکنم اونو بشنگان باغوی اون هیفونو درنده رو الان هم در پاکستان یا در تاجگستان میگن شیر با این نایست دیدن که میخورین داشت میگن شیر تست یال شیر درونده با طب رون از دولت بر از شیخ خوراکی مثلا و مال باعث باشه تو دو تا مثلا معروفه گوند سرعت دیگرش سر مسور هر همصد قبلا میگم تو سالمین در مس اون چی فارسی اینو سور سور اونه هرسه یکی بنابراین سهرات آب به معنی رنگ چهرن سهرات یعنی که رنگ چهرنش و در بعض سوهرات. این قدیمی رو مجید نوشته سهرات دستان رو سهرات اون ما دیگن و و که خانوها به صورتشون میوالند که لنگچه او را به صور خوکنه واسفید بکنه که صورحب و واسفید بشمیزن عبد کلیش نداره که از اون وقت که ما هم چرا اصلا که خواهد هم به یا بود که کار نبود که با رحمت کنه از که اون هم آب عبد نداره که یعنی موادی که رنگ چهره رو صرف میکنه. یعنی موادی که رنگ چهره رو تثبیت میکنه. یعنی تورو رنگ چهره است یک کد این در نام هندان به نام همون سهروردی معروف خالص هست. سهرور یعنی گل سرخ. و این اصلش که آشنیم کردیم از و دور آرایشیم رفتیم وار، ولی آرایشمون کنارش دست دادن ندارد. این بودید سوگون که بیشتر ازش داره تا یعنی گلیستم و مثلا حالا اون یعنی گل سهراب یعنی سوری اسم که و yani یعنی سرخستان بنابراین درست ترجمه کلمه در در و چه چینو را جنس, جنس مولن، مولن. و با از سابتینا به این با اینا اولین فرمی بودن که و به نظرشون رسید که دستگاهی که صدا سازه از اینجا، است. از پنجاره حالا همه دستگاه صدا خوشید بس که از این میتونه ساختونه شد این شاست مثلا چل نیست چلی دوسته هم که همه ی زبان و همه ی دارن که در این گلتی خیلی نداره قافم نداره من نمیدونم احتمالا روسی و آلمانی رو این هم بودید. نمیدید؟ از که این حقا که... برای هر چیزی علامت پسیزی برای هر خود این صداهای علامت بسیزی. و مرمول به روز یه رساله داره گنه و که اونجا میده که اصلا این صدا رو از با اکس دهن وقتی که اون صدا رو تولیب می کنه ساختن تو زیاده طرف طرف اون فرقا میان داره رساله که نام کار نداره نمازده به روز او او این او رو لب گرد میشه و میشه این شکل او آ از نین رو این اکس اینو میشه و سایر بستار کار با این مسئله اصلا به حال اینا به نظر شما که برای هر صدایی یه علاوه فرمی کارم کردن الفا رو کردن و تمام الفاهای دنیا بدون استثنا الفا سامی ها الفا آریای ها الفا یهوی الفا عرب انگلیسی بغیر از درمان که همیز ایدوگرام هستن تمامشون از الفا علف گرفت ابجد اول نظام قرار این یعنی از زبان دیمیگی ها دو، علف ده دال ه ز ه تا ی تا آخر برای این رو بچه خوب یاد بیار میدیره و زود یاد میدیره آمده هم رو جمع کرده در هشتی کلمه افتا تفتا تی کلمه ها در اسلام در عربی و فارسی هم ترتیب قرار گرفتن علفه همین جدید بود یعنی تا قرار بچه کنیدشتا مکتب الیف، بی، فی، فی، فی، فی، یاد نمیگرد بود یاگی گردتا الیف، فی، جیم، گرد بعدا من امی افجاد رو افل یادش میدهدن این هشتی کنه باید بسید الیف باید که بهش میگن الیف و طفل افجاد خان که افجاد خان یعنی که تا زیگه شمیشتی مکتب بعدها اومدن این الیف رو شکل که شبیه به همه پلو هم بگوشت کنید. به و په و سه و چه و هه و زال و و و سین و شین و سد و زد و و زا. اینو یعنی الاف بیت سه الاف های که از تو تمام الاف های دون از این های گرفته شده ای بی سی دی عبجر که ال ام ام آر ایس تی ترشن نه علاوه بر پاش مونده دیگه سی هزار سالی ولی با این حال اینا همه مونده همال ارا با این چه الفبای فارسی آراضی اختاسی شده بعض مثلا ط و میم و حالا و این نظام الفبایی است بعد آمدن برای هر گونه معقول اواجی هم قائم شد ها ها هست خودتون میگه با اولاش رو کنیم و بذاریم ندیجه چیه؟ نتیجه اینه که تر کلونهی که شما رو زبان گرید یک معادل اولی هم بره مثلا این نیم یک ده، پنجه، علی خواهی، یک علی، این و می یعنی یا علم. در سال 1324 قمری مزفر می شود فهمان محشودیات سارید. کلمه عبد مزفر می شود 1324. در ذهن مزمین رو پرند می رسونه که ادالت مزفر نیسا اینجوریم های درسید، حتی می این یه در ماییش را به فردوسی آموزتاری فهان نیاسه از آموزتن یکم نیاسه از میشه هزار برای آموزتن سر که از خیلی عجیب بعضی صحبت وازی های دیگری هم شعران می کردن انبنی در مدهب آقای جات که استخوان لب را می‌سوزاند حرف آخر هست و عباد به صفان و هر مخصوصین از راستی چهار مخصوصین عباد به زودت هست هر مخصوصین راست آخر عباد به ناری که تنهای به یه صورت باشه که با هر دفعه یکی بهش گفتن هزار دستان. یعنی که آهنگ و های زیاد بره. هزار هم که هزار, دستان. هزار, دستان ها ها هزار ها. یعنی های زیاد کم کم هزار دستان دستان چند شده هزار یعنی برگرد شده تا بعد میزه بینگیزه دوره قاجار ها اینا آمدن در اینکه اینا فرق بذارن گفتن که اون هزاره اینکه هزاره اصلا اصل بکر هزار در عوضتایی هم از هزنگ میگره اینکه هزار هزارش هم هزاره درسته قربولش هم هزار برمانه شمید. تو نهر آخر از و راستی تو همشون نخستی هم چند. این اون تشمه اون آخر در سال ۱۳۳۰ بیشتر دید دوره سلطنت فتنجا و اگر فتنجا دستور دارد گمباد حضرت رو تلاش این حضرت است مال تایش این ساحبی به نام نیز محمد در را می که با این کار پول را مانعی از خودش از خودش مانعی سعی می‌کند میزانی نادرست باشد. یک قاضی دیگر می‌شود خب شما آیجبودیم قاضی دیگری سخت نه قاضی دسته زیم که قاضی دلاین استان دسته چندی می گفتیم برای چه جای با چه خوبی، چه قطع روهمیه، چه بعد اینجا کسی خوابید، پیده وجود شریف عزیزیه نمیدونم، برادرش امامه، پدرش امامه، مرادارش تادمی زهره جد وزرگش پیغمبره به مقباری هم کسی که اونجا داریم، برادار هست بعد هم یواش حرف رو به خب پاچه که, که خداقنه بخونه چه بخنه چه چه دستور داد دست کرم باز کرد در از کسیتار کرد تو دستور که این گنباد تلاش کردن اینجا به صورت بهش کارا بخونه این این شایرم هم, هم کرد. یه قصیده ساخت به همین ترتیب شایسته‌بوده و همین ماه‌تولوش هم این کوتاه‌بود و و دین سوخته می بسم الله الرحمن الرحیم این قصیده ما جزیدی اگر امداد خیلی نبود من امکان نوش اون کنی چیزی زادن، مطلبش همین که عرض کردن، هر کود اونش رو ساکنه ساعت ساعته بیسه هشت اومده تا رو بسیم نه نه از کنم که تا کلمه همزی علی رو تمام این و بعدم تا این ریزه ها می کنم بیدی. این, این, این می چیز تمام باید. چیزم داره. به دا همین یکی هم نیست که این ریزی چیزا. بعد ورز این ما تاریخ های بسیار خوشمجبه. مثلا تاریخ دونست شای اسماعیل و ترخواه عثمانی بوده تاریخ مذهب ناحت. چون با هاشون حالا بودن بیدی. نشریه بودن، نسانی بودن، بگیدن مذهب حساب تو چه میشه. زال شیشتسد شیشتسد و چهل ه پنج شیشتسد پنج ب شیشسد بعد خود این ها کلکم که نه این استرگاه همین فرزی این عربیه مذهبنا و نه هفت نظهب و مثلا نظهب این خیلی زیاد هست و گندش این میگن بهش به تاریخ و اون حروف روپ و این واضی ها که دیدم که نمیشون نگم برای سون بگفت کنیم میبذاره سوال برست <تصفيق> نمیدونه این <بار> <تصفيق> این باید <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> شرطی که فهمم البته غزاله مهم باشه خب بیتاره که از بعد از این باشه که تا باشه اشکال نده که کاره معقولی هم باشی باز از این بست کنه حیرت همت عشق کنه تا دیست و اله بگید یک ره بله ره دیدیست بشه یاره دوست دارم چارو دوست دارم سیزی، پسر مادربزرگ می‌جن، پسر مادری دیم می‌جن، دادم مادری کافی می‌جن، شیرم